قسط های هزار یک شب شب ششم باقی حکایت سیاد سیاد با افرید گفت که چون تو قصد کشتن من کرده بودی، اکنون من تو را در این روین این خمره به زندان اندر کنم و به دریا بیافکنم. افرید چون این بشنید، فریاد برآورده بنالید و سیاد را به نام بزرگ خداوند سوگند داد و گفت تو بدکرداری مرا پاداش بد مده و چنان مکن که عمامه با آتکه کرد. سیاد گفت چگونه بوده از تکایت ایشان؟ فرید گفت من چون توانم که به زندان اندر حدیث کنم اگر مرا بیرون بیاوری حکایت باز گویم سیاد گفت ناچار تو را به دریافت کنم که دیگر راه بیرون شدن ندانی من پیش تو بسی بنالیدم و زاری کردم تو بر من رحمت نیاوردی به همی خواستی که بیگناهم بکشی و به پاداش اینکه من تو را از زندان به درآوردم، تو در حلاک من همی کوشیدی اکنون بدان که تو را به دین دریا درف کنم و به جا خانه کنم و همه کس را از کردار بد تو بیاگاهانم و نگذارم که دیگر کس تو را به در آورد که تا ابد در همین جا بمانی و گونه گونه رنج ها ببری افرید گفت اکنون وقت جوانمردی و مروت است. مرا رها کن من نیز با تو پیمان بربندم که هرگز با تو بدی نکنم و تو را از مردم بینیاز گردانم پس سیاد از افریت پیمان بگرفت و به نام بزرگ خدا سوگندش داده مهر از سر روین خمره برداشت در حال دودی از خمره بیرون آمده بر آسمان رفت پس از آن در یک جا جمع آمده افریتی شد زشت منظر و پا به روین خمره بزد و آن را به دریا انداخت چون سیاد دید که افریت خمره به دریا افکند مرگ را آماده گشته با خود گفت که این علامت نیک نبود. پس از آن، پیش افریت بیامد و گفت ای امیر افریتان تو پیمان بستی و سوگند یاد کردی که با من بدی نکنی که خدای تعالی تو را پاداش بد دهد. آنگاه افریت بخندید و گفت ای سیاد از پیمان بیا. و سیاد دل به مرگ نهاده همی رفت تا به کوهی برسیدند به فراز کوه برشده از آنجا به بیابان بیپایانی فرود آمدند و در آن بیابان برکه آبی بود. بر آن برکه بیستاد و سیاد را گفت دام به این برکه بیانداز و ماهیان بگیر. سیاد دید که در برکه ماهیان سرخ و سفید و زرد و کبود هستند. او را عجب آمد و دام به برکه بیانداخت. پس از زمانی دام بیرون آورد چهار ماهی به چهار رنگ در دام یافت. پس به او گفت که ماهیان را به نزد سلطان ببر که او تو را بینیاز سازد و اگر گناهی از من رفت ببخشای و عذر مرا بپذیر که من هزار و هشت صد سال به دریا اندر بودم و روی زمین را ندیدم. تو همه روز از این برکه یک دفعه ماهی بگیر و سلام. پس زمین شکافته شد و افرید به زمین فرو رفت و سیاد به شهر آمد و از سرگذشت خود با افرید در عجب بود. پس به خانه بیامد. آمد. ظرفی پر از آب کرده ماهیان در آن انداخت و آن را چنان که افرید ها مخته بود برداشته به بارگاه ملک آمد و ماهیان را به پیش ملک برد. ملک چون به دانسان ماهیان ندیده بود از آن ماهیان در عجب مانده گفت این ماهیان به کنیز تباخ به سپارید و آن کنیز را سه روز پیش ملک روم به هدیه فرستاده به هنوز چیزی نپخته بود چون ماهیان به کنیز سپردند وزیر به فرمان ملک چهارصد دینار زر به سیاد بداد سیاد زرها به دامن کرده شادان و خرم به خانه خیش بازگشت اما کنیز طباخ ماهیان را به تابه انداخته آتش بگذاشت تا یک سوی آنها سرخ گردید و آتش در زیر تابه همی سوزاند که دید دیوار مطبخ شکافته شد و دختری ماهروی به مطبخ درآمد که در خوبی چنان بود که شاعر گفته شاه را ماند که اندر صدرگ دیبا بود هر که اندر صدره دیبا بود زیبا بود آشقان را دل به دام انبرین کرده است سید سید دل باید چو دام از انبر سارا بود هست دریاگ ملاحت روی او از بهر آنک انبر و مرجان و لؤلؤ هر سه در دریا بود گر به حکم طبع یقما رسم باشد ترک را آن سنم ترک است و دل در دست او یقما بود و در دست آن دختر شاخه خیزرانی بود آن شاخه را به تابه زد و گفت ای ماهی آیا در عهد قدیم و پیمان درست خود هستی؟ چون تباخ این بدید بیهوش افتاد و دختر همان سخن مکرر می کرد تا اینکه ماهی سر برداشته گفت آری آری پس از آن همه ماهیان سر برداشته گفتند اگر یگان شوی با تو دل یگانه کنیم زمه دوست دوستی دیگران کرانه کنین دخترک چون این بشنید تابه را سرنگون کرده از همان جا که درآمده بود به در شد و شکاف دیوار به هم پیوست چون کنیز به هوش آمد دید که ماهیان سوخته و تباه شدند کنیز ملول نشسته به بخت خیشتن گریان بود و می گفت شکست خوردن در جنگ نخست مبارک نباشد کنیز با خود گفتگو همی کرد که وزیر در رسید و ماهیان بخواست کنیز گریان شد و چگونگی باز گفت وزیر را عجب آمد و سیاد را بخواست و گفت از آن ماهیان چهار دیگر بیاور. سیاد به سوی برکه شتافت و دام بینداخت. پس از زمانی دام بیرون کشید. دید که چهار ماهی مانند همان ماهیان به دام اندرند. ماهیان را پیش وزیر آورد. وزیر آنها را به کنیزک بداد. کنیز ماهیان به مطبخ آورده به تابه بینداخت. در حال دیوار مطبخ شکافته، همان دختر آفتاب روی به مطبخ اندر آمد و شاخه خیزران تابه زد و گفت ای ماهی در عهد قدیم و پیمان درست خود هستی؟ ماهیان سر برداشتند و همان بیت پیشین بخاندند. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است